بعضی میگن من کچیکتر از اونم که از این حرفا بزنم ولی من میگم با یکم عصبانیت میگم چقدر کتاب میخونین؟ چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از جوان ها ساعت ها توی بلوارها دور دور میکنن چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از خانوم ها از ماهی سی روز 24 روزش تو آرایشگاهن. هست چقدر کتاب میخونین؟ مده که از یک شب تا پنج صبح توی فیسبوک درن چت میکنن یا راجب مسائل بی اهمیت نظر میذارن چقدر کتاب میخونیم؟ مده که سریال ترکیهی میبینیم در 444 قسمت چقدر کتاب میخونیم؟ مده که بعضی از جوونا درگیر مدل اتومبیل مدل مو و فاق شلوارن چقدر کتاب میخونیم؟ کاش کتاب خوندن مد بود؟ کاش کتاب خوندن مد بود؟ سرانه مطالعه هر ایرانی در هر سال فقط چند دقیقه است و سرانه توی اینترنت بودن هر ایرانی در هر سال هزاران ساعته کاش کتاب خوندن موجود. زوده یکم از فصل یکم این اما 23 ام برنامه رادیو 18 بنفشه و البته دومین دو برنامه رادیو با گروه هجر. تو این با نفسای دومین ماه هست سال خورشیدی رادیو 18 بنفشه میاد که بگه تا اوردی بهش تموم نشده عاشق بشید و ول مابدا بالا بگه دیگه روزایی که من و میکروفون تنهایی برنامه رو می بستیم تموم شد امروز دوستن زیادی پشت میکروفون این برای میکروفون اون برای میکروفون سلام. سلام. سلام. سلام سلام سلام سلام منو همراهی میکنن و خلاصه دوربرا اون حسابی شلوغه و ما از این قضیه خیلی خوشحالیم اقا به میکروفون من دست نزن میکروفون اج و نفشه میکروفون من. گفتم، گوطه میکروفون منه برادر. ما نداریم بهش دست بزنیم. برید بابا من باید حرف بزنم نوبتی منه. سلام، الهام هستم و در قسمت جدید رادیو با شما خواهم بود. من به اتفاق میکروفون رادیو 18 بنفش از یک سال شدن رادیو خیلی خوشحالم. of the Iranian capital Tehran believe that spring happens in their city twice a year. One is the spring that comes after winter and the other one is a cultural spring which is referred to Tehran's International Book Fair. This is a place where huge crowds pour in from across the country in a 10-day period to find out about the latest updates in publishing for Iran world بچه های رادیو و سردمیر محترم از خوندن متنای آماری و آمار دادن خوشمون نمیاد اما یه آمار جالبی رو براتون تهیه کردیم برای تولید هر تون کاغذ معمولی 17 اصل درخت از جنگل‌های خطه شمال و غرب ایران قطع میشه که با این میزان کاغذ میشه حدود 1700 جلد کتاب 400 صفحهی چاپ کرد این عدد اندازه تیراژ یک چاپ معمولی به حساب میاد شما رو نمیدونم ولی این جانب علاقه شدیدی به این موجود زنده دوست داشتنی بی آزار تنومند زیبا یعنی درخت دارم داشتم فکر میکردم کدوم بهتره که باشه این همه کتاب یا این همه درخت والا این درخت زبون بسته وقتی هم قطع میشه خیلیش به همه چیز و همه کس میرسه تصورشو بکنید ما آدمای های از خود هم وقتی که میمیریم تازه مشکلاتمون واسه بقیه شروع میشه و بعد از کلی تشریفات باید خاکشیم و کوچیم تا بلکن به محیط زیست و چرخی طبیعی یه مش نیترات و مواد معدنی اضافه کنیم اگه قضیه کتابای الکترونیکی تو کشور ما که انقدر به وجود این موجودات سبز زندگی ساز احتیاج داره رواج پیدا میکرد دیگه لازم نبود فکر کنیم درخت نباشه بهتره یا کتاب خیلی هم راحتیه هر کتابی که قرار چاپ بشه به صورت اینترنتی در اختیار مردم گذاشته بشه تا اینجوری های کمتری هم از اون به شکل کاغذی عرضه بشه البته پرداخت هزینه این کتاب از طریق اینترنت در جای خودش محفوظه و اگر که رسمیه Dear Mr. وایت آقای White عزیز بچه ها می توانید مستر و مکسیزو اینا رو بیارید؟ خب می توانید مثلا عنوان هایی مثل داکتر، پروفیسر Dear پروفسور جونز، پروفسور جونز عزیز خب از این لقب ها می استفاده کنید یا مثلا در مورد امون دایی خاله اینا دیر آنت لوسی امه لوسی عزیز خب مثل حاله بشه چون منم به عموها منم یادم سال اول دانشگاه جو بسیار شدیدی بنده رو فرا گرفت دانشگاه ما هم که دانشگاه دولتی بود حالا اسم نمیبرم ها. ولی انقدر حال میکردیم عکس سردر دانشگاهمون رو پشت پنجاه تومنی چاپ کردم. چهو دیگه میگیره انقدر که اگه ولمون میکردن حتی برای نماز جمعه هم که شده میرفتیم یه سر به دانشگاهمون میزدیم. خلاصه یادمه به عنوان یه ترم دیگه شورش رو درآورده بودیم. همه فوق برنامه ها رو شرکت میکردیم. هر برنامه‌ای که دانشگاه میذاشت و نمیذاشت ما ترم یا یه پای ثابتش بودیم. گرفتن بن نمایشی که یکی از همین جبگیریا. خب اولش به نظر کار راحتی میومد رفتن به یه وبسایتی و پر کردن فرم ثبت نام و مشخصات و واریز اینترنتی و نصف پول بون و گرفتن یه کد رهگیری خیلی هم آسون و راحت دست این اینترنت هم درد نکنه که اگه نبود چه ها که نمیشد الان تنها مرحله که باقی مونده بود مراجعه به بانک و گرفتن بون کتاب بود سرتونو درد نیارم. موعد این رسید که این جانب با در دست گرفتن مدارک لازمه به یکی از بانک های مورد نظر مراجعه کنم خب من مثل یه دانشجوی کاملا متشخص صبر کردم تا نوبتم شه و بفرمایید سلام من دانشجوم منم کارمند بانکم کارت چیه؟ راستش من اومدم بونه کتاب هم بگیرم ثبت نامم کردم و اینم هم مداره نمیشه. نمیشهفعلا به ما بونه کتاب ندادم برو بعدا بیام بعدن؟ بدن یعنی کی آخه من دانشجو کلاس دارم فهمیدم دانشجویی دمی... من نمیدونم هنوز پول نیومده بفهمید سلام من دانشجویم من کار надо کار چیه راستش من اومدم کتاب کتابمو بگیرم ثبت نام کردم اینم مدارکم نمیشه فعلا کتاب ندارم برو بعدن بیام بدن؟ بعدن یعنی کی آخه من کلاس دارم فهمیدم دانشجویی من نمیدونم هنوز نیومده کار راستش من بگیرم دیگه؟ این دیالوگ بین من آقای بانکی چند روز پشت هم به همین روال و بینتیجه رد و بدل شد منو میگی دیگه داشتم کلافه میشدم به شدت ناخرسند بودم که چرا نباید به قشر دانشجو احترام بذارم اونم دانشجو یه دانشگاه دولتی؟ از یه طرف دیگه هم نمایشگاه شروع شده بود من فقط چند روز فرصت داشتم تا بنی کتاب از بانک مورد نظر بگیرم. دیگه کفرم در اومده بود. که چطور این بانکیا به همه ارباب رجوع احترام میذارن و کارشون را میدازن؟ ولی من دانشجوی جوی های علم و کتاب و نمایشگاه کتاب همچنان دستم تو پوست گردو مونده. همین شد که تصمیم گرفتم مستقیما پیش رئیس بانک برم. به حال ریاست محترم بانک حتما ارزش کتاب و دانشگاه و دانشجو رو میدونه اما راستشو بخوای زهی خیال باطل ایشون متأسفانه ینقدر فرصت نداشتن که به حرفهای من گوش بدن روزای نمایشگاه کتاب پشت سر هم میگذشت و من به هر بانک ای که مراجعه میکردم میگفتم باید به شعبه بانکی که از اول انتخاب کردیم برید و بن خودتون رو بگیرید یا اینکه مستقیما برید وزارت ارشاد اما من پا اقب نزاشتم مثل یک گلادیاتور سرتق انقدر پیگیری و مراجعه کردم تا بالاخره در آخرین روز نمایشگاه اون سال به بل کتاب دست یافتم ولی اینو واقعا میگم اصلا ارزششو نداشت اصلا چون من مجبور شدم در واپس این روز نمایشگاه و شلوغی مزاحفش در مترو له له بشم در سالنها با خیلی عظیمی از جمعیت روبرو رو بشم و خیلی از کتابهایی که دنبالشون بودم رو پیدا نکنم نمیدونم شایدم همینی که هست توقع من زیادی بود. اون چند روز بود که به من فهمون من دانشجو با یک دیپلمه فقط در چهل هزار تومن ناقابل فرق داریم دیگر هیچ آواز از می گفتار از می، گیتار از می دیدار از تو هندو می، سیگار از می цیگار از می از تکرار از تو آواز از می گفتار از می، گیتار از دیدار است تو اندوه از سیگار از آغاز از تکرار است تو لابرنده ز سیب آمد که گوزیمه تو رسوآمد که ساکت بود صدام نذا پن بودم دیدم من که فریادم که مرا مرا هوا زنده بمان بمان جواب تام نتام نتا شر ون بزن آوا اگر سرانه مطالعه ما در سال پایینه عوضش نمایشگاه کتاب هر سال پرشورتر از سال گذشته برگزار میشه با حضور صدها ناشر هزاران انتشارات و چاپ کننده و چند صد هزار بازدید کننده دنبال آگاهی منتها اینا حسنشون اینه که یه جا جمع نمیشن پراکندن هر کی کار خودش رو میکنه. یه عده از اینا اشانتیون بگیرن. یعنی یه کیسه دستشونه. از این سالن به اون سالن و از این گرفه به اون قرفه هر کی هرکی هرچی مجانی میده میگیرن میریزن تو این کیسه. حالا این میتونه آخرین شماره مجله اخترشناسی باشه؟ یا برچسب پدر پسر شجاع؟ مهم نیست مهمینه که این کیسه تا قبل از غروب آفتاب تا خرتنقش باید پرشه یه عده عاشق سیب زمینی سرخ کردن میان نمایشگاه یه سیب زمینی سرخ کرده میخرن یه سوسی میزنن میخورن میرن بعضیا انصافاً برای سیب زمینی سرخ کرده نیومدن خودشون سیب زمینی دارن زیلو دارن گاز پیکنیکی دارن و مایه کتلت فقط اینا تا غروب نشده سریع جمع میکنن یه وقت تو تاریکی جوراباشون لای چمنا گم نشه یه عده دیگه هم میان با انواع کتاب های قطور عکس میگیرن شب میذارن رو فیسبوک یه عده هم اصلا نه هدفی دارن نه برنامهی نه چیزی از صبح میان تا شب یه چرخی میزنن شب موقع رفتن از دم در یه رنده با یه جا تخم مرغی میخرن میبرن برای مادرشون اینه که نمایشگاه کتاب کلن چیز خوبی است جا داره مسئولین بیشتر دقت کنن ما از این به بعد یه صندلی تاشو کوچولو برمی‌داریم و میریم کنار انسان‌های بزرگ میشیم ازشون درس زندگی، درس عشق و درس محبت می‌گیریم و از اینکه کنارشون باشیم مصرور میشیم و میخندیم این هفته در خدمت رضا کاظمی نازنین بودیم و با صدای بی‌نظیرش کیف کردیم. دیدیم که حیف مخاطبای بینظیرمون رو با این احساس زیبا شریک نکنیم افتخار دارم که بگم تا ثانیه‌های دیگه واسط رضا کازمی عزیز با داستان آکاردیون نواز مهمان گوش ها و دل شما خواهد بود آکاردون نواز. ساز میزد با کارد اون از ها. تو راسته امیراباد از چهارراه بالا چپ خیابان شروع می کرد میامد پایین کوچه ها را داخل خارج شد. کوچه یکی مانده به چهارراه پایین را که تو میرفت خارج نمی شد دیگر کوچه بنبست بود خانهاش را کسی نمیدانست انگاری تو کوچه بنبست آب می میرفت زمین اما فرداش دوباره سر چهارراه بالا بود پول میگرفت. کسی هم اگر میداد اخم می بهش اخ می بش میگذشت. انگاری فقط برا خودش یا برای کسی که فقط خودش می دانست، ساز میزد. آهنگهاش همه قمقصه آوازهاش همه هجرانی فراوی. میزد میخوااند میگذشت میرفت. چند پوش هم نبود، خوش پوش خوش سر و لباس بود. چهرش هم همیشه توهم هم قمگی. دقیق یازده سال به همین سیاق تلو غروب کرد از چهارراه بالای امیرآباد تا های کوچه بمبسته یکی مانده به چهارراه پایین که صدای اکاردونش آرام آرام قطع میشد مرد برا مردم برای کسبه خیابان شده بود راز یک روز غروب صدای سازش نیامد فرداش هم یک ماه بعدش هم انگار از کوچه ها خیابان از مردم کسبه چیزی کم شده بود مرد خودش راز بود مشتی سوال هم بهش اضاف شد چه شد؟ کجا رفت؟ چرا رفت؟ نکند جایی سکندر خورده افتاده سرش هم گرفته جدول خیابان کوچه پکیده مرده مامورهای شهرداری هم صبح پیداش کرده برده باشند و مدتی بعد مردم آرام آرام شروع کردند به نبودنش عادت کنند و کردند غروب یکی از روزهایی که نبود ماه بعد صدای سازش آمد از چهار راه بالا چپ خیابان کسبه آمدند بیرون به شوق و تعجب پنجره های کوچه ها هم باز شدند آهنگ ها همان آهنگ های قمغصه آواز ها آواز های هجرانی فراغی صدای ساز و آواز مرد بود اما مرد خودش نبود جاش زنی بود زیبا خوشبوش با چهره تو هم قمهی. چند سال پیش تولدم بود و منم چشم به راه گرفتن کادو خب مسلمن در فرایند عاطفی اقتصادی تاریخی کادوگیری سه تا نکته خیلی مهمه یکی اینکه چه کادویی میگیری دو اینکه از چه کسی میگیری و آخری اینه که چه کادویی رو از چه کسی میگیری خب اون روز فرا رسیده بود و من منتظر بودم تا یکی از بهترین کادوهای زندگیم رو از یک آدم استثنائی بگیرم و کلی هم شوق داشتم. از توضیح مقدمات دیدار در کافیشا ها بهلت وقت میگذریم. نوبت رسید به کادو بله و این دست ها بود که به سمت کیف سامسونت میرفت اون لحظه راستشو بخواین اصلا نمیفهمدم شخص مورد نظر داره چی میگه. یاددم که چشای من به شدت و شرکت ایشون رو روی قه کیف دنبال می‌کرد. یه چیزایی هم میگفت دیگه که من به صورت مبهم بوم بوم بوم میشندم و دل تو دلم نبود که چی قرار ازتون کیف بیرون بیاد؟ یه تمل ایشون داشتن آرزوی عجوز مجوز شدن من و تبدیل شدنم به یک پیرزن 120 ساله رو میکردن و تبریکات کلامی دیگه که خب خیلی هم مهم نبود دیگه کنجکاوی این که تون کیف کذایی چی میتونه باشه وجود داشت بالا میرفت خب بودو دیگه چقدر محتار میکنی؟ یعنی تلا گرفته یا شدم لوازم لبازم آرهیش؟ آخ نه نه نه زیاد خوشش نمیاد احتمالا ساعته آره اون صحبتش بود که چه ساعتی بهتره؟ ای و حتما ساعته خودو کنه حداقل مارکدار باشه ای بابا بودو دیگه یه کادوی ناقابلی هم براتون گرفتم انشالله که خوشتون بیاد بفرمایید بله بالاخره کادو از بیرون اومد کادو شده بود اما کاملا مشخص بود تنها چیزی بود که حتی فکرشم نمیکردم. یعنی انگار یه سطل آب سرد ریختن رو قیافم مثل کره در حال آب شدن شده بود انگار کاخار زوهام به کل فرو ریخت ولی ولی من که از اون نرفتم حالا اومدیم اون کتاب نبود شاید جعبه شکلات خارجی بود یا شاید هم یه جعبه پندک زیپو آره دختر کتاب مثل اینکه بله درست حدس زدین چقدر خوب چقدر خوب هیچی دیگه آخه کتاب آخه آدم به یه دختر جوون کتاب کادو میده آخه کتاب میخونم من نه کتاب آخه چی کاغذ کادوی زیشتی هم داره به به چه کاغذ خوشگلی چقدر خوش سلقه حالا امیدوارم سبک کتاب و عنوانشو دوست داشته باشی سبک سبک سب چیه حالا خدا کنه حدقه رمان عاشقونه چیزی آورده باشه بخونیم حسلم و سر نره خلاصه خلاصه ما کادو رو باز کردیم و کتاب رو کتاب رو بله بحثی بر هجاب نفسانی هجاب نفسانی هجاب نفسانی چی میبینم من؟ خدایا من چه بدی کرده بودم یادم چشام کتاب و اسمش نمیتونستم بلند کنم جلالم می‌خواست سرامو به دیوار بکوبم مونده اونجا دیوا نبود که آخه آدم وقت قرار به یکی کادو بده پیش خودش نمیگه طرف چی دوست داره نمیگه اگرم میخواد کتاب بده باز از خود سوال نمی کنه آخه این کتاب در حد این آدم هست یا نه اصلا این کتاب میتونه هیچ ربطی این آدم داشته باشه به دردش بخوره چی شد؟ از کتابتون خوشتون اومد؟ بله خیلی خوشم خیلی. آخه چیزی نگفتین؟ گفتم شاید دوست نداشتین نه من شوکه شدم که اصلا شما کجا کجا میدرسید من چقدر به یه همچین کتابی علاقه دارم بله منم مطمئن بودم این کتاب مناسبیه برای آدمی مثل شما در واقع طرز فکر شما و این کتاب خیلی به هم نزدیکه و من خودم هم عاشق مفاهیم این کتابم من دیگه نمیفهمیدم چی می‌گفتن ایشون و فقط در حال ورق زدن و خوندن فرست کتاب بودم که پر بودش از قول های ناشنا راستش من هنوزم که هنوزه اون کتابو نگه داشتم با اینکه بجز یک بار هیچ سعی و هیچ رغبتی برای خوندنش نشون ندادم اما فکر میکنم تأثیر و مفیدترین کتاب زندگی من بود برای این که به من نادون فهموند بهتر تو انتخاب دوستان عزیزم چشامو بیشتر باز کنم و هر کسی و با هر طرز فکری و علقی آدم اسپشیال زندگی خودم ندونم و حرف آخر این که هر چیزی دورهی داره و زمونی و جای شروع میشه و در یک نقطه مشخص تموم میشه مثل خیلی از رویدادها، ها، فستیوال تورنمنتها، ها، مثل نمایش کتاب اما تنها چیزی که تموم نمیشه کتاب قریدن و البته کتاب خوندن نخریم بذاریم یه گوشه به گرفتن عکس از روی جلد و انتشار توی فیسبوک و اینستاگرام بسنده نکنیم نگیم که امروز خسته ام از پردا حروم نش نکنیم. حروم نشین. بخونیم. بخونیم. بخونی. قسمت یکم از فصل اول رادیو 17 بنفش. برمیگردیم دو هفته دیگه. تموم.